خب اگر ما آیه 93 سوم سوره مبارکه نسار را دقیق توی اون تأمل کنیم متوجه می شویم که خطاب با در واقع برای کسانی که فرد با ایمانی ای را عمدن به قتل برسونن که حالا چهار تا مجازات به کیفر شدید اخروی باز در سخن دیگر از امام علی علیه السلام هست که امام فرمودن که افسون بر مس... مسئله قصاص که مجازات دنیاوی است تو این اومده یکی بس خلود و جاودانگی تو آتش جهنم هست و من یک طول مؤمنن متعمدن جهنم و خالدن فیها دومی خشم و غذب الهی و غذب الله علی. علیه دوری از رحمت خدا شما وقتی مشاهده میکنید ولعنهو او چهارم محییز ساختن عذاب عظیم برای او و اعدله و عذابن از ایما خب این چهار نکته رو نگاه کنید این در واقع از نظر مجازات اخروی می بینید که دیگه حد اکثر تشدید و شدت عمل رو شما پیرامون قتل امنی در واقع مشاهده میکنید و اگر خواستید برید آیات قرآن رو نگاه کنید حالا تو بحث سوره بقره آیه صد افتاد هم نکته اومده بحث قصاص هیچ آیهی در هیچ مورد از قرآن این چنین مجازات شدیدی رو ما نداریم خب حالا سوال اینه که آیا قتل نفس موجب مجازات جاودانه می شود یا نه ببینید خلود مخصوص کسانی هست که کافر باشن دیگه از دنیا برن دیگه حالا افرادی که قاتل قاتل باشن قتل عمدی کنن و مؤمن باشن و پشیمون هم بشن و حالا توبه هم کنن حالا توبه کنن از دنیا برن اینها چی می شود این, این افرادم جاودانه در آتش هستن ببینید ما باید اینجا دقت کنیم این برای همین این آیه باید ایشون بیان داشته که این آیه بزرگترین و شاید یگان دلیله به ابدی بودن عذاب مرتکب کبیره هست و در تمام که تو کلامی برای این نظریه به این آیه استدلال شده و استدلال به ظاهر این آیه نسبت به آیات گذشته از قوت بیشتری برخورداره خدمت شما عرض بود که ببینید باید دقت کنیم تو تعابیر مشاهده کنید اینا را حالا الله سبحانی بیان, بیان نکرده من وارد رو من میگم که روشن میشه. ببینید انسانی رو ما به خاطر داشتن اگر شخصی انسانی را به خاطر ایمان داشتن به قتل برسونه و یا کشتن او را مباه بشماره روشن که چنین قتل نشانه کفر قاتله ببینید الان شما مشاهده کنید توی میانمار و متاسفانه شما الان تو هند هم دیدید این کار را دارن میکنن الان مسلمان کشی باب شده متاسفانه و جاهایی که اینها خودشون رو در واقع پیرو ادیان مختلف میدونن در این کار رو میکنن همینه دیگه اینا بابت داشتن ایمان یه سری مسلمان بودن میان این کار رو میکشن اونا را و این خدمت شما عرض شد خدمت شما عرض شد که اینها جوافدانه در عذاب خواهند اتفاقا در کافی و تفسیر عیاشی ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام همین نقل اومده که مراد این هست احتمال دیگه هم وجود داره که قتل افراد با ایمان و بیگناه سبب بشه که انسان بی... انسان بی ایمان از دنیا بره و توفیقه توبه نصیب اون نشه به همین خاطر در واقع گرفتار عذاب جوافدان بشه ببینید شخص بیاد یه شخص مثلا فرض بگه یه آدمی بوده ایمان داشته دیگه حالا ایمان داشته و بیاد یک شخص با ایمانی رو در واقع با ایمان و بیگناهی رو از در واقع بکشد خب اون شخص اون لحظه ایمانش از دست داده دیگه اون کسی که قاتل هسته طبق روایات ما خب کسی که در این گناه رو مرتکب میشه در حقیقت ایمانه رو موقع از دست داده دیگه علی امانه یزید و ینقس دیگه توفیق و توبه هم نصیبش نشه به این خاطر این احتمال رو میشه مطرح کرد ممکنه که بگیم منظور از خلود در واقع عذاب بسیار طولانیه نه عذاب جافدان یه دم اینو میگن ببینید حالا سآل اینه که اصولا قتل عمد قابل توبه هست شما وقتی میرین نگاه میکنید مفسران فراوانی پاسخ سریح دادن منف... پاسخشون هم منفیه اونا میگن قتل نفس طبق آقایهی که بیان شده طبق آ... آیه در واقع 93 سوری نسا قابل توبه نیست با این حال ما وقتی میریم روح تعالیم اسلام و روایات ائمه را رو مشاهده میکنیم فلسفه توبه که در واقع پایه تربیت حفظ از گناه تو آینده آینده زندگی هست اینه که هیچ گناهی نیست که قابل توبه نباشه اگرچه توبه بعضی از گناهان بسیار، بعض از گناهان که بسیار سخت هستند و شرط سنگین داره رو در واقع شما وقتی نگاه می‌کنید شامل اونها هم می‌شود ان الله لا یغفر يُشْرَكَ یوشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء ببینید آن چیزی که خدا نمیبخشه شرک دیگه اما غیر اون رو برای هر کس به خدا سلام ببینه خواهد بخشید البته ببینید این آیه نباید مستمسک و دستاویز خدای نکرده خدای ناکرده برای اشخاص باشه برم مؤمنان را به این منظور اینه که آقا ما نمیتونیم مثل معتظله بگیم الا ولا بود اگر شخص در واقع اومد یک مؤمنی را کش شخص با ایمان اومد یا شخص مؤمنی را کش در واقع این حتما جهنمی خواهد بود گفتم که اولا احتمالات را لحاظ کنیم بعد بر اساس آیه 48 سوری نسا هم بریم جلو. شما با مجموع روح قرآن رو وب ببینیم ببینید آیه 48 ام سوره نساء الله لا یغفر ان بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء داره بحث آموزش گناهان از طریق شفاعت و مثل اونها رو میگه ها خدمت شما عرض شبد که وگرنه یک نفر اگر مشرک باشه تو دنیا توبه کند و به توحید و اسلام بازگردد خب طبیعتا اون بخشود نمیشه مثل مسلمان هایی که تو صدر, صدر اسلام بودن خدمت شما هر شد که توبه توی دنیا پس باید لحاظ کنیم توبه از شرک توی دنیا شدنی هست البته با اون لوازمی که بیان شده حالا یکی کسی مشرکانه مرد خب اون دیگه تکلیف معلومه دیگه خالد در جهنم هست و خدمت شما عرض شود که باید دقت کنیم یک از مفسران میگن که آقا آیات مربوط به آمرزش همه گناهان در پرتوفه توبه از قبیل هست و قابل تخصیص هست مثلا اینه که اومده که تو سوره زمر اومده که ان الله و دنوبت جمیع و انهو والغفور و رحیم تمام, و تمام گناهان پس طبیعتاً اینجا نمیشه شرک نمیشه بد. حالا جدا از این نکته اگر کسی قتل عمدی از او سر بزنه به کلی از آمرزش خدا حالا معیوس بشه و خدمت شما عرض شود که معیوس شود و توبه نکند و اینها خب این طبیعتاً معلومه دیگه این آدمه توی لعن و عذاب خواهد بود پس ما باید اینها رو توجه کنیم میخوام میگم این آیه قیلقال های اون زیاد هست آیه نکتش زیاد هست مطالبی که بیان شده خدای الله صبحانی هم ای که میگوید ببینید جدا از اون مطالبی که ما گفتیم متحمد رو میگیم فرد مؤمنی رو به خاطر ایمانش بکشه طبعا در این صورت قاتل کافره خلوت بس اقامت ممتت هست با این که اینکه آیه ظاهرش در خلود آتش هست هرگز سریح در قطعی بودن این است. نیست مواردی که هست حالا ایشون مطلب 4 میرم که بیان میکند در صفحه 402 اینه می... اینه که قرآن هرگاه در مورد مسلمانی گناهکار او را محکوم به خلود و عذاب کنه ما به حکم تسلیم در برابر, در برابر قرآن و پذیرا بشیم. و ببینید این نکته ای که هست این نکته رو ما باید لحاظ کنیم ما توی روایتی از امام موسی کاظم علیه السلام مشاهده می‌کنیم که امام فرمودن که لا یخلد الله فنار الا اهل الكفر والجهود واهل الضلال والشرك و می‌فرمایند در ادامه که و من اول کبائر من المؤمنین لم يسأل عن الصغائر ببینید خدا نکته‌ای گفته در واقع خداوند جز کافران و منکران و گمراهان و مشکان را تو آتش جاودان نکند قرار نمیده مومنانی که از گناه کبیره اجتناب کنند در گناهان سغیر بازخواست نشوند و ببینه در ادامه اون سخن پیامبر بود که ما بیان داشتیم دیگه ودخرت و شفاعتی لحل کبار من امتی شفاعت من مربوط به مرتکبان کبیر از امت من هست موارد دوازدهگانی که ایشون میگه موارد دوازدهگانه یک موردش قابل ملاحظه هست موارد دیگر ما بر اساس سیاق متوجه شدیم به کافران و مشرکان و منافقان برمیگردن در مورد آیه 93 سوره نسا این حکم قطعی و محطوم و در واقع سریح نیست احتمال تاثیر شفایت رو از بین نمیبره بعد پس این مطلب رو اون روایت هم که شیخ صدوق از امام کازم نقل کرده اونم با ما لحاظ کنیم در واقع این یک مورد هست و ایشون میگه که آقا با توجه پس, آیه پس ما توجه کنیم آقای 93 سوری نسا واقعا نیازمند تحمل و ملاحظه است یعنی نه ما از اونور میتونیم بگیم دلیل معتظله اینجا رد میشود و نه از اون ور میتونیم دلیل معتظله را کامل بپذیریم این رو لحاظ کنیم اینجا صحبت رو از ملا صدرا بیان میکنن که آقا گوهر ار انسانی بر اساس توحید آفریده شده یادتونه که من بهتون گفتم ملا صدرا نکته که میگه ملا صدرا و ابن عربی قبول نداشتن دیگه بحث خلود را یعنی اینکه که جاودانه در نهایت افراد بمونن رو لحاظ نمیکنن میگن اونگاه که در واقع شخص وارد دوزخ میشه به تدریج این خدمت شما عرض شود پوشش ها و حجاب هایی که در اثر گناهان و لغزش ها بوده اینها از بین میره و انسان نهایتاً به فطرت خودش برمیگرده و از دوزخ در واقع نجات پیدا میکنه و به فطرت پاک وارد بهشت میشه همین صحبت رو شما میبینید که ابن عربی در فتوات مکیه میگه و میگه اونها در نهایت افرادی که مرتکب کبیره بودن در واقع نجات پیدا میکنن خب این مطالبی بود که اینجا بیان شد خب ما می رویم سراغ خدمت شما هر که بحثی رویشون مطرح کرده به عنوان اشکالات دیگه از جمله اشکالات معروف اینه که آقا باید بین جرم و جریمه و گناه و کیفر نوعی در واقع توازن برقرار باشه کیفر باید برنازیت جرم و گناه باشه مثلا اینکه شخص توی یک جهان محدود یک خطایی را مرتکب می شود نباید در واقع جریمش چی باشه عذاب جاودان باشه. اون توی در واقع زمان بازه محدودی مرتکب جرم شده. این که شما بخواید در قیامت به طور ابدی اون را در دوزخ قرار بدهید این خلاف در واقع عقل و حکمت است. این شبههی که یه اده گرفتن. ببینید ایشون مطلبی رو مطرح میکنه اینه که آقا قانون توازن و موازنه میان جرم و کیفر از قوانین اغلایی هست که اینا مربوط به مجازات ها و کیفر قراردادیه که شما ببینید مثلا شخص اگر تخطی کنه از قوانین راهنمایی نمای رانندگی این شکل می‌شود قوانین کشور همین ها همینجور اینها قوانین قراردادی هست در حالی که رابطی گناهان و در واقع اقوبت های اخروی به شکل جعلی و قرار دادی نیست یه رابطی تکوینی میان آنها برقراره ببینید کفر و شرک به خداوند من همون چیزی که بهتون گفتم دیگه ببینید یه زمان خطایی رو ما میکنیم کم کم حالت میشود ملکه میشود فراتر از اونها میشود وجود ما این یه ریشه نفسانی برای ما که ایجاد می کند بحث روح و روان ما هست دیگه دیدید که ما گفتیم ما توی بحث حالا انشالله جلسه بعد پیرامون تجسیم اعمال مطرح خواهیم کرد خدمت شما عرض شود که وجود ما وقتی ما بحث معاد رو گفتیم دیگه تو معاد جسمانی مطالب رو گفتیم در واقع ما صورت‌هایی از اعمالمون رو مشاهده می کنیم. وقتی وارد خدمت شما عرض شود که بهشت یا جهنم می شویم. یعنی اینها ها می شود رسوخ میکند در نفس ما و در آخرت تجسم عینی و اخروی اون در واقع اعمال ما حالت جاودانه یا ابدی خواهد داشت و اینجا هست که گناهان ما شما مشاهده میکنید کنید که خدمت شما شود که اگر خدای نکرده شخص کافر بود این رنگ و بوی خدمت شما عرض شود که ابدی به خودش می گیرد پس این مطلب را شما باید به شتمن توجه کنید اینی که اینا میگن گن قراردادی هست ای توجه نکردن ببینید ما باید ملکات نفسانی رو دقت کنیم ما این ملکات نفسانی تو حیات دنیاوی کسب میشن؟ اینا تو باطن ما در واقع روسوخ پیدا میکنه حالا موقع قیامت نفس با قدرت خلاقی خودش اگر یادتون باشه ما گفتیم یه جسمی با صورت و شکل مناسب با حقیقت ملکات رو در واقع چیست انشام میکنه در واقع جسم اخروی هم همکنون تو قالب ملکات اخلاقی موجود هست و جسم اخروی گونه که جناب مولا صدراب بیان کرده اینه که مرتبه و مرحله دیگری از همین جسم مثالیه که تو حیات دنیاوی در هر انسانی تحقق پیدا کرده. پس ببینید این نکته رو شما باید توجه کنید. اینه که ما بگیم حالت قرارداد هست و ارتباط رو یه ارتباط مکانیکی بگیریم نه از این نیست. بعدم خدمت شما عرض شود که باید توجه کنیم یه نکته دیگه. ایشون میگه که اصولا نمیتوان گفت رابطه خطا و آثار آن همه جا جنبه قراردادی دارد و با قراردادن میتوان آن را کم و زیاد کرد بلکه در همین دنیا نیز رابطه لغزش ها و خطاها با آثار و آن رابطه تکمینی و تولیدی بوده و خطای لحظه ای عواقب تلخ تلخ همیشگی را به دنبال دارن مثلا شما خدای نکرده این شخص در واقع خودکشی می کند. یک لحظه است دیگه اما همیشه از نعمت حیات خودش رو محروم میکنه یا این شخص در واقع خودش رو میزنه نابینا میکنه خب این یک لحظه بوده مونتا در طول حیاتش این آدم نابینا هست پس شما نمیتونید بیاد بگید که آقا در مورد تمام خطاها بس که مطرح شد بینه جرم و کیفر در واقعی که رابطه قراردادی هست نه این شما همیشهگی را نمیتونید بگید. ایشون نکته ای رو که میگه آقا ما دوتا تو دو تو رابطه تولیدی رابطه تولیدی ابدی و رابطه تولیدی موقت رو باید در نظر بگیرم کفر و شرک از نوع گناهانی هست که در واقع هرچند تو دورانی موقت صورت گرفته اما منبع تولید و پیدایش رنج و عذاب همیشگی توی آخرت میشه اینه که شما میبینید بحث اعمال نیک و بد و آثار زیبا و زشت و اینها مطرح میشه همین بحث هستگی از دنیا مزرعه طول آخره در واقع این که ما میبینیم در آیاتمون به نکته شعر شده در روایاتمون این اومده هست دنیا مثال کشتزار در واقع دنیا ویژگیش اینه دیگه من توصیه میکنم حتما حکمت استدسیه یکم نهج الولاغی رو در واقع برید مطالعه کنید یه شخص در واقع دنیا رو داشت نکوهش میکرد امام علیه السلام اونجا میاد اون شخص رو توصیه میکنه ایوه هز دامو لدنیا المقتر رو به غروره ها به عباطیله آخه امام میره جلو صحبت‌ها رو میگه آقا تو که داری عین نکوش کنن ای دنیا که خود به غرور دنیا مغروری و به باطل‌های آن فریب خوردی خودت میگه فریبته دنیایی اون رو نکوش میکنی بعد میگه آیا تو در دنیا جرمی مرتکب شدی یا دنیا به تو جرم کرده حالا کم کم میره جلو صحبتی که امام می‌کنه اینه اون بخشی که انصافاً امام دست می‌ذاره صحبت رو برداشت میکنه آقا دنیا قدر نیست مکار نیست نوع رابطه ما با دنیا متفاوت میشود. ان دنیا دارو صدق لمن صدقاها و دارو عافیت لمن فهم آنها و دارو غن لمن تزلف منها و دارو مؤید لمن تعذ لمن تعذ بعد اشاره میکنه که مسجد و احبای الله و مسلا و مسل و ملائکت الله و محبت و وحی الله و متجر و اولیاء الله اکتسب و فیه الرحمه و ربهو فیه الجنه, فیه فیه الجنه. ببینید نکته اینه که خدمت شما عرصه بود همین دنیا دنیا در سرای راستی برای راستگویان خانه تندرستی برای دنیا شناسان خانه بینیازی برای توشه گیران خانه پند برای پن ناموزان، سجدگاه دوستان خدا، نمازگاه فرشتگان الهی، محل نزول وحی الهی، جایگاه تجارت دوستان خدا است که تو اون رحمت خدا را به دست میارن و بهشت رو سود میبرن. ببینید این قدار نیست به تعبیر آیت الله جوادی. اگر دنیا گورستان ها رو تنها نشون میده یه،, یه مورده اگر از اون بر بیمار گورستان ها رو نشون میده نیمارستان ها رو هم نشون میده از اونور خوشی ها رو نشون میدهد بدی ها و تلخی ها رو هم به ما نشون میده تعامل و جهت ما و دنیا هست که بده و یعنی خود دنیا بد نیست و اونها این رابطه ابزاری رو برقرار میکنن یعنی شما ببینید اون چیزی که نوع ارتباطی که ما باید داشته باشیم این رابطه هست دیگه یعنی شما الان میگین ما رابطه اون جعلی و قراردادیه خیر همون بی که من بهتون گفتم یعنی آقا اون رابطه که ما فکر میکنیم رابطه موقته نیست اطمینان رابطه دار هست ابدی هست دیگه درسته توی دوران کوتاه تو باز کوتاه بوده اما شما وقتی نگاه میکنید این خودش شده رسوخ در ملکات دارد در نفسانیات دارد برای همینه که در سخن دیگه از امام علیه علیه السلام میبینیم که ما میفرمایید که العمل و صالحو هر سل آخره یا در سوره شورا آمده است که منکان یورید و هر سال آخره نزد لهوفی فی هر سه ببینید دنیا مثل یک در واقع کشتزار مطرح شده دیگه که این رو در واقع مزرعه آخرت میشود دیگه ما دنیا رو مثل یک مقدمه و ابزاری باید ببینیم که از طریق اون به اون هدف والا میرسیم. و در فلسفه هم یه قاعده معروفی هست که میگن ذاتی شیءن لا یختلف و لا یعنی چیزی که ذاتی و حقیقت چیزی که ذاتی و حقیقت چیزی به شمار میاد هرگز دستخوش تغییر قرار نگرفته و تخلف ناپذیر تخلف ناپذیر میباشد یعنی آقا ما نمیتونیم اون را از جای خودش به کلی زائل کنیم یعنی با این نکته همون طور که ما میگیم انسان در آفرینش خودش با خودش یه رشته در واقع یه رشته خواست ذاتی به همراه داره که هرگز از او جدا نمیشه ببینید ما ذاتیات معلومه چی هست دیگه مثلا شما میگید اموری که ما داریم مثلا خداوند به ما چه داده است این فطرت را داده است دیگه این همراه ما هست روح را به ما داده ممکنه کفر و شرک مدام اونم از روی آگاهی و تعمد این بیاد کم کم طبیعت سانویه ما بشه و ذاتی ما بشه ببینید امر ذاتی قرار بود خدمت شما هر چود که تغییر پیدا نکنه تخلف نپذیر باشد دیگه ما میمیم این رو دستکاری میکنیم و عرفای ما میگن اینه که انسان طبیعت سانویه پیدا میکند و این خودش اون موقع من طب... طبیعت اولی هم کنار رفت طبیعت سانوی اومده حالا طبیعت سانوی خدای نکرده شخص شده کفر و شرک و این نتیجه اون خواهد شد که شخص در عقوبت و عذاب ابدی گرفتار شود و نه اگر ما به همین فطرت توحیدی باقی باشیم خب طبیعتا ملاقات حق تالا می شود دیگه برای ما یعنی ما کاده هستیم دیگه یا یH انسان انکه کاد اون ارت به که کد هن و ما در واقع کادهیم دیگه داریم این مسیر رو میپیماییم ملاقات اهالا این ملاقات یا می ملاقات رحمت که طبیعتا ما اون ذاتی خودمون طبیعت اولیه خودمون رو حفظ کردیم یا خدای نکرده یه افراد طبیعت اولیه رو حفظ نکردن و گرفتار در واقع عذاب جاودانه می شون. انشالله که همه ما مشمول در واقع مخلدین در نعمتها و بهشت باشیم. خب مطالب ما اینجا به پایان رسید انشالله جلسه بعد پیرامون تجسم اعمال و ملکات بس خواهیم کرد. ما را هم تو این لحظات پربرکت ماه رمضان از دعای خیرتون ببیجه در شبهای قدر فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم